سلام، محمد رضا تفرشی هستم مثل شما علاقمند به سنت گردشگری با کمک همکارانم و علاقمندان این رشته سایت رادیو گردشگری رو راهندازی کردیم امیدوارم مورد توجهتون قرار بگیره اگر شما هم دوست دارید میتونید خاطرات سفرها و مطالب جالبتون رو در قالب فایلهای صوتی برای ما بفرستید. و با صدای گرمتون رادیو گردشگری رو پرباتر کنید از اینکه با ما همراهیت سپاسگزاره. امیدوارم من و همکارانم بتونیم قدمی هرچند کوچک برای شما که به صنعت گردشگری آمده‌دی